فیلم. من کجا خوابم برد؟ نویسنده شهروز آقایپور تهیه کننده و کارگردان؟ محمد جواد کاسس بازیگران مهدی حاشمی جهانگیر شما متهمید که شوهر مرهومتون رو از طبقه نوزده برج آپارتمان مسکولیتون به پایین پرد کردید افسانه پاک رو مینا صحبه های سختی رو داری اما اگه هزار زربه هم بخوای توی این به اندازه یه زربه نمیشه که تو زندگی به من زدگی محنوش صادقی منزل اول گفتم ما که شام با هم نمیخورهیم ناهار با هم نمیخورهیم امروز سبخانه رو بردم اینجا با هم دیگه بخوریم لادن سلیمانی منزل دوم یه هفته از من یه سری میزنی نه جواب تلفنمو میدی نه جواب اس ام میدی حتی خوب بیام در خونه تون جلوی زن بچه با در و بچه و درو همسایه آبرو و حیثیت تو ببرم ها دوست داری ابراهیم آبادی دکتر صمیمی چرا دکتر تهران خوبی برای تاخیر بندنی نیست معذرت موسیقی مصباح قمسری خاننده هادی محمدی. خونه تاریک تاریک. معتی در باز میکنه و وارد خونه میشه. سلام مینا. چطوری؟ خوبی؟ مینا؟ مرد از پله ها میاد پایین و خونه به هم است خوشی مینا؟ وارد اولین اتاق پای پله ها میشه روی میز پر از کتاب و پوشه و مجلس ماهیم شدی؟ عزیزم من امشب خیلی خستم حساب ندارم باید گاهی موشک وازی کنم بیا بیرون بگوی امروز چی کنهای کردی آه؟ بحری خب حق داری ببخشی تنهایت میذارم میره سراغ پیغامگیر تلفن این چه فیلمی در جان اصلا معلومه کجایی بابا فردا مجله میزی زیری به جون جفت و جان جان دا قسم میخورم ها به جون جفت و اگه تا ه صبح فردا آخرین قسمت قسم تعید بدی با یه عذرخواهی ساده از خواننده ها آگهی چاپ میکنم جان دارم قسم میخوررم ها ببینجان بعد گ نکنین میدونم بابا یادم بود من میدونم ش باید همونش کنم مرد با اون موهای جولیده لخ لخ کنون میرسند کنابه میشینه و یه قرص با یه میخوره بیا بیرون با او سیز ندارم اح. بیا ما کنم آشتی آخ مینا. نه ولو میشه رو کنابه مینا تو اصلا من همکاری نمیکنی نه همدردی میکنی نه هیچی شام خوردی؟ نه خورده یه قهریت مره اینه صد دفعه گفتم وقتی من دیر میام چه چیز بخورده یه گوش نمیده که بیا بیا برای ساندویچ جو یه ساندویچ چینی رو خورده سکر سبوت رو باید کنی رتبا من، به این نظبی رو تحمل نمی کنم اگر بخواد اینجوری پیش بره. دادوارا غیر علنی اعلام میکن آقای جانگیر جهن وکیل منترمه متهمه لطفا دشبیه جایبا مطالبتون رو بیان کن جواب غازی وزار موترم همی خدمتتون عرض کن موکیل بنده خانم مهین صوفی حدود یک ساله که وجه جرم قتل همسرشون آقای آرش ادیب در بازداشت بسریه. من تا تقاضام از جناب رئیس اینه که اجازه بفرمایید یه چند تا سوال از متهم بپرونم. بله. خانم خانوم صوفی شما متهمید که شوهر مرحومتون رو از طبقه 19 برج آپارتمان مسکونیتون به پایین پرت کردید. آیا این اتهام قبول دارید؟ بله. نه. ادامه اداقهزم پس چه دللی برای این قدرول ممکنه وجود داشته باشه؟ کسیشون رو پرت کرده؟ نه آرارش خودش خودش رو پرت کرد پایین خواهش می کنمم حرف بزنید سکوت شما به ضررتون تمام میشه خواهش میکنم آ کل دنبال دلیل نکردید شما شما بیمار ن بیماری روانی داشتن درسته بله جناب قاضی من اطمینان دارم که موکل بنده مثل یک سال گذشته باز هم سکوت خواهند کرد بنده وظیفه خودم میدونم که از ایشون دفاع بکنم با طب مستنداتی که در اختیار دارم و دلیل بیماریشون در اینجا هست افسردگی حاد ایشون داره یفترگی بودن تحت نظر پزشک بودن و این پرنده پزشکی ایشون که دکتر معالجشون برای شما آماده کردم الان خدمتون ارائه میدم بذارم حانو آیا شما تأیید بکنی یه شوهرتون بیماری حدید داشتم بله چرا تا به حال نگفتید؟ چون... چون من بارش بول بودم. اصلا فکر بودم که به هیچ کس نگم که مریضه. هیچ کس ندمش. فقط خودم شکستم. شوهر روان روانپریش داده منظور بررسیه پرونده جدید تا اطلاع استانبی تعدیل اعلام می شود می شود واقعا وکیل باشم و از یه بیگناه دفاع کنم جهانگیر استهلی میاد پایین اما من, من که وکیل نیستم من کیم وسطهای را کل جوان منتظرش. بله، به نظر شما وقتی قونیه اینطوری اتفاق افتاده؟ یه نفر مرده ولی وقتی اتفاق نیفتاده. بالاخره یه نفر کشته شده. بله، ولی کسی نمی‌دونه. بازجام معظما سر راه علی فاضل هست. 12 کلی ما عاشق شد، این چیزی که این ظاهرتون افسانهام میگه پیدا شد. یعنی بود، صحبت قص و قصه دیدن همون راز بیماری اسفودگی شوهرشون فقط بمونه. من نمی‌دونم، فقط نمی‌دونم چه چیزی عاشقانه‌شون به هم زد. اینو می‌دونم که موکل من نشون داد که وفاداری آشغانه هنوز وجود داره برای در شما یه نتیه نفسدگی میتونم اما به همسر اشون باشه میتونم این ها باشه برای قاضی برای دارتون چی میتونه باشه صحب باشته باشین یه صبح آفتابی و جهان تو ماشین روزنانه میخونه و تیتر خبری به سابقه کشمش بود گشت ماهیگیر از دریا بریده های جرایت بکسور کارتون خواب موتا همه ی ها با سوزن تحقیر به تابلوی تو اتاق زنه شدن با تل با نواختن نی از چوبه دار نجات یافت یه صبح روشن نزدیکی یه پارک جهان ایستاده منتظر ماشین که یه دختر جوون عینکی با لباسای خوش رنگ و شاد در حالی که کلی پوشه دستش کنارش میسته نگاه متعجب جهان دختر رو میکنه و دختر زیرچشی این نگاهی به اون میندازه باز جهان دست بردار نیست این که دختر اونو یاد چیزی میندازه با ظلمی زنه به دختر میره تو فکر همون یادش نمیره برای چی اینجا بای سایدش مستقیم بفهم بفرمیم بفرمیم چون بفرمیم من نیش نمه هم برنگاه زنی مریض تخت دروازده این تصرفیه خیلی حالش بده همراه هم نداره یعنی همینه نتونی سخانه پیدا کنه خیلی حواست داشت باشه تخت هفتم هم همهاش غذابی ماستون دوست نداره یکم غذایی بیشم منده توی یخچار گرم بهش بده ببین من سرده نمیام اون قطیه نه بچی باید بترسم بیترم میبینی من از اولا دوست داشتن منم میمازن روانی کار کنم یه لحظه کوشی آقا ببخشی من همین کنا پیادشم نازنی من به زنی میزن. تمام مدت جهان به دقت و حرفای دختر من جهان که عینک دودی ران زده چشم از دختر بر نمی و پشت سرش تقلیلش میکنه آاش آ کمی که دختر دور میشه اطرافش این نگاهی میندازه که کسی متوجه این تغییرب نشه و رو را میفته بخته که متوجه می پشت سرش شده، همچنان راهش ادامه میده. قدموشو کم کم کند میکنه و اجازه میده جهان بهش نزدیکتر بشه و بالاخره بر می گرده و زول میزنه به جهان. که نمیدونه باید چی کار کنه نگاهشو به زمین نمیدازه دختر با سرتکون دادنی به نشانه تأصف قذب نکت به راهش ادامه ده. جهان اینکشو برمیدار و با حیرت به دور شدن دختر خیره میشه شب تو اتاقش مدام قدم میزنه چرا دست از سرم بر نمیداریم اینه؟ مرگ مینوهی از روی کتاب او سر جهان پرواز میکنه بیجن تویی؟ چرا کوشیو بر نمیداری جهان؟ اوزه که با سر خوبی؟ نه بابا حالم خوب نیست چرا؟ تو نمیدونی مریم مهریشو گذاشته ایش را؟ آه بیجن بیجن میدونی داری با زندگی چکار میکنی؟ من یا اون؟ مرگم زن خوبیه تا دیر نشده برو دستشو بگیر ازش دل جوی ببرش خونه بابا کار از یه حرفو گذشته زندگی کارو به اینجا کشون دی دیگه خوشی زده بود زیر دلت من وقتی میام خونه پیلیش میدوزم درو با میکنم اما وقتی که تو خونه هست درو برام وا میکنه خوش بابا دارم الان گرمی تفاوت این دوتارو کن بابا؟ تو دیگه اجتماعی بردن کن من تو این سنه سال خیلی تنها هم میشکی رو ندارم نا این نا مادری هفته سال تا سال دیگه دیگر نبیدیم. هرکی تو گرفتاری زندگی خودشه راستی توی هشت سال چرا بچه دار نشدین؟ سکی همین مونده بود که بچه دار بشین یه حرف عدیبانه بزنم؟ بزن بابا عجم خادوی زندگی تو پر کن با آشار عشقال داریم تو عشقال داریم. عشقال جمع کن ندیدی؟ باز یافت. خمیلش میکنم دوباره از نو بهترش میزه موضوع تموشو دیگه حرفی ندیده جهانجون ببین من پس فردا قرار دادگاه دارم تو رو خدا بیا تکلیف من رو روشن کن طلاقش بدم بره خسته شدم تروندهی طلاق قبول نمیکنم برای یکی دیگر رو پیدا کن ای با منم من دیگه من نیستم آفه یکی دیگه علو جهان جهان, جهان. علو علو بعد رفتی یا روی کاغذا و کتابا میذاره و بیهوش میشه. شوفه. رویای دریا با موج‌های سردم. قایق ایران کنار ساحل و جهان که کلاه بافتنی سرشه و رو بدن و صورتش تور ماهیگیری گرفته، خواب خوابی که آروم چشماش می‌کنه. <تصفيق> بشنا. هوای همیشه ابری من من اینجا رو همه چیم از اینجا شروع شد جهان که نشسته و خوب اطراف رو نگاه میکنه با شنیدان صده ها تعادلش از دست و میفته کف قایق بعد فیلفور از قایق میپره بیرون شروع به دویدن میکنه چندین مرد بادگیرکوش و چکمکوش دنبالش میدار جهان میمیتونه زیاد دور بشه مردا دورش میکنن جهان سرگرده میکنه. باشه دیدی؟ تهوارس چی تو تو؟ یه ماهی ماهی کی اینجا باز شروع مرد با کسی دیگه ایشگه بای گلیتی نه ترس کن نه ترس آه بفرم آه آمپوری برای چیزد یا خیلی دست شما بنام یوشو جان دست در نکنه سر بنام جان این تو واقعا مدن ایفیسی؟ نه. دیگه از تو خودتو فراموش کردی، از خودت نمی‌شناسی. اصلا نمی‌دونی کیسی. چی اسم منه من جهانم. اومدم دنبال مینا. مینا کی؟ تو جانگیری دیگه، جانگیری جیرده‌ای. اینم زن تو آسیه. یه سنه دلخور. اینم بچات. چهار تا بچه‌ی قدا نمی‌خاد. من زن ندارم. بای بود با مینه ازدواج کنم رفتم دنبال در مینه کیه؟ تو کلاس دو ردی رداری چهار روزو پیش رفتی دریا ما فکر کردم تو غرق شدی. الان که برگشتی برای ما فالسیت میزیم کجا بودی؟ تهران تهران؟ باقای رفته بودی تهران؟ باقای؟ نه با اتوبوس رفتن چهار روزی پیش تو با اتوبوس رفتن پیل مرز خمشی یقیه میگیره چهار روز پیش نه سی سال پیش منیم ایش نهزی نه من پدرزن ازم حاجی جان تیه قربان باشم این خود زن نشنسته بعد این زنه اتره باش این تب داره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 برر جهان برر آقا جهان اومده جهان منم که تو جهانگیری این جهان منم اون جهان بخشه برادر تو، برادر توه برادر من خب کوچه نمی تو بینم چه هل خوبیسته هفته بیسته برادرتو لطبار کردی الان که تارف کن بیاد تو من من آذرم به وچم نرسیده برادرم بزنم از این طرف لنگروه تا اون طرف شهست بار همه خبر داره <متصفيق> ببینم جهان جهان گیت جهان از میره سمت در پا نکنی آلم چون میره سلام برد برد همه اومدن طولی بکن اوکیه برد برد زخیم نیدوی جهان نیبوسی من برده اتو هم بله که سپاری هم بزنی میگورری خدا جام با حالا چارپنش خواب ندارم پسن خدا هم میبرد جام بگرد اصلا نه عرض نه میراسی چی ندارم آخه من کی ایجا رو بگرم اشکان لن رو بگرم اصیه فارسی صوت کنگه آخه جام بفرما چو بفرما چو مانه خیلی من اون زاکان آخه چه هم امراد این بدا رو سرش آورده هیچی کفیتی که زمین پدریش بهش بدی بفروشه شاید دست بالش بازشه همه شماله ایمان زمین میخوام برای چی آی آی خکم سر شکره جان دارم خواب میمینم میگم اگه قرار تو بدی دریا گم بشی، بعدش بعدشم برگردی اینقدر خوب بشی اصلا فارسی همیگاه کشن گرفت بزنی اصلا چهر روز چهر روز ها؟ <تصفان> <تصفان> <تصفان> <تصفان> <تصفان> <فوقوب> بره بله خودم باشد بیا. بگم جهان میشه فردا منو ببری رشد دوتی که تلا بر من بخری خیلی بده هیچ بر من نخریدی من کار دارم پولیدم خودش برو بکن چقدر؟ جهان کولی اترابل چک میده دست زن عوضش بنام بگو مینا کجاست؟ سیدار ببنه نشون بده تختی سبنام مینا کسه اینجا بود در کش کردم مینا، تو کنار تنه‌ی درختی صورت دختری جوان با روسری سفید می‌بینی. درخت که دختر قیب میشه. اون مینا مینا، مینا چه بره؟ چی مینا کی مینا کنی؟ خدا، اوه تو خدا بی. چیگونی تو؟ تیم نما قرار مینا حالا جهان مینا رو روی پلی بین درخت میبینه نردمون کنار درخت میگیره و میره بالا وسط پل واینست مینا آخ چقدر خوابم بیان نه نه نمیخوام از اینجا برم نمیخوام از پیشت برم اینا میخوام تو ابد هم اینجا بمونم حالا سرش بزاشته کناری پول باز بیهوش میشه مردی با کلاه فرانسوی صورتش رو چمه دونه بخواه چناب دفتر شده؟ چناب دفتر شده؟, دفتر شده. درش شما شما انت پروفسور جناب دکتر با تعجب دست به ریش پروفسوری چونشون کشه من اینجا چیکار کار میکنم لطف بفرمایید جناب دکتر ترافیک تهران تهونی خوبی برای تاخیر باند نیست از بخواهم میشه بفرمایید با من چیکار داری؟ من مسئول همایش هستم بفرمایید چنابت همایش بازم جناب دکتر جودت سردر نمیاره حالا دکتر جودت تو ماشین نشسته و اپارتمان های تنگ همون همه نوساز و تو همه, همه تو هم. به طور خلی تجربیات و تحقیقات ما در تیران نشان داده نسبت شیب ها یک کلیم به بهترین برای صرفتن راه ها با جانب هم شیب یک کلیم به به یک امدیشم اونجا چیم؟ کجا؟ نظامی این جناب دکتر نیوگور که از میکنن نسبت شیب امدی به افرگی اونجا چند؟ کنه میستن کنه کنه جهان که در نمیاره با دستا شیویانشون میده و ایچیزای برگوید کنید که تو این بسمت شد در سالون همانش بکر و بگی چرا که مقدار بیشتره نمیدید لحظاتی دامشتی ها چقدر گوشتایانه من دذرن که سفرانیشو با سالون همانش بشنید جهان که مبعوته دیگه با دکتر سمیمی بحث نمی کنه و فقط ساختمون رو ماشین بعد از یه طولانی جلوی هتلی توقف میکنه جهان کیف به دست همراه دویور وارد لابی هتل میشن اون فقط به اطراف سر میچرخونه و مبهوته من بله آقای صفایی بله بله من رو انجام دارم خواهیش میکنم میبینم ایتون خواهیش میکنم خدا میکنم سلام آقا سلام سلام خانم. سلام من دکتر سنیمی هستم بله اسمم جواب پروفسور جوداد اتاق رزرو پروفسور جوداد بله بله حتما بله. آقای پروفسور جوداد خیلی خوشحالم که میبینمتون متشکرم بس متشکرم دکتر سنیمی مشغول پر کردن فرم میشه و پروفسور تو لازم نیست راست میفهمه تو سرت نه جربه که همه چی واقعه باورم نمیشه جواب نمیدادی بله رشیدم حالت خوبه نه نه خستم خیلی همین دیگه هر گفتم نباید بری به گوشت نرم نمیتونستم نیام که اینجا نمایشه منو آبردان دست من که نبوده که آره نمایش واقعا فکر می‌کنی مینا خانم هنوز 20 سالشه منتظر مونده که برگردی از اون حرفای تکراری زدی ببین من آوردن اینجا برای همایش آبهای دیرستهی در لقش های چرخشی شما که متوجه چیزی نیستی که دکتر من که میدونم برای چی بعد این همه سال فیلت هوای هندستون کرده همیز هوتلی؟ بله من رضا هم چی میگم؟ جهان جهان برو. دو کمه دو. دون رو باز کن دوشی رو داشته باش خب گوشه سمت چر گوشه سمت چپ آها خب پیدا کردی؟ نه ندار دیگه بگو کجا با نه روان سمت چپه چمدون. سمت چپه؟ بگینام اینه؟ جهان دوده پیس عد رو کودش یه بست قشت آبیه آه آه پیده کرد بگیان پیده کرد خب بازش کن یه دونه بخور یه دو خوری ها هر, هر ساعت یه دونه ازش میخوری جهان اون نه تنها قرص رو تو, رو تو ساعت، بلکه همه قوطی رو تو سطح خالی میکنه آه. جهان دیم صدای چیه جواب من جهان دیگه خوان این ها آقای من میخواهم از جناب پروفیسر جودت تقاضا بکنم تشریف بیارن بالا سخنانی خودشون رو ایراد بفرماین به افتخارشون صور پای پوش زیر بغلش بعد از تشکر از هزار میره بالای سن پشت میکروفون سلام می میکنم خدمت حضار محترم اساتیز گرامی دانشجویان عزیز و مهمانان ارجمند که امشب اینجا تشریف داریم. من خیلی مشکوف هستم که بعد از سالها دوری از وطن به میهن بازگشته و امشب در خدمت شما عزیزان هستم و اما مقاله علمی امشب اینجا جایی برس که زمین لغزش یا لند و ریزش های سنگی نمونه ای از حرکات توده‌ای هستند که اگر بر روی زمین های شیدار اتفاق بیفتد ممکن است باعث تخریب منازل و تأسیسات و مسدود شدن جاده ها و رودخانه ها از موارد اگر حجم عمل کرد اسلاید زیاد باشد باعث ایجاد دریاچه ها همین کلی از هزار تنور بسیار کم سالان خوابشون برد فرسایش شدید در مسیر رودخانه ها و آبراه ها ایجاد شیب زیاد واحدهای رسوبی و سنگی، عدم اتصال محکم بین واقتا و سنگ بستر، بارمدگی شدید و می میباشد. و حتی فعالیت‌های انسانی مانند خاک برداری برای ایجاد راهها قطع درختان و پوشش گیاهی و حتی زلزله میتواند باعث تسریع دختر دانشجو شبیه مینای جهان بین جمعیت نشسته که حتی تو اون نور کم جهان ها نگاهش به اون میفته قفل میکنه به لکنت میفته گاهی،, گاهی لازم است که جلوی زلزله ها را بدیدیم دختر لبخند بزن گاه، گاهی باید بگذاریم این زلزله ها درون ما و وجود ما را بلرزاند و خرابمان من بکند خراب خراب خراب خراب وزان محترم عزیزان من از خرابی نترسید از زلزله نترسید بگذارید خرابتان بکند بگذارید ویرانتان بکند رو دل velvet جان میافته دکتر صمیمی ترسیده بادی می شود با اش کالایش روح و روان بشود اش می تواند هر دردی را درمان کند هر صد جانی که آب می خوره پروفسور شما از یک متن بکونید دارید پیوغه می رهد. من بیراه می رید می فرماین که از موضوع همایش منحرف شده و به بیراهه رفتم نه خیلی شما بیراهه می گر با غم عشق سازگار دل با مرکب آرزو سوار آید دل که کف نمی زنه همون دختره که همین زنه پروفیسور رفته به هم پروفیسور اینکش رو نزنه تا دختر بهتر ببینه و مبینی که اونه همه بیدارند جز یک نفر به عارف بزرگ گفت ای عاشق دیرین من خوابت هست بیدار شو عزیز بیدار شو چرا قوه رو روشن میکنه و نورش رو میدازه تو صورت دختر دختر به سختی چشم باز میکنه من بله شما شما شبیه کسی هستید که من سالها پیش گوش کردم همچنان نور رو سورده دخته موزه سخرانی شما چیز دیگه آقای دکتر همایش سخنرانی برای من بحانه بود من برای پیدا کردن تو به اینجا تو شما میتونیم برادن من قهرمان بوکس کشوره؟ بوکس؟ همون لحظه ضربه دستگش بوکس پروفوسور رو پرت میکنه طوری ضربه های سخت نه؟ من طاقتیش ندارم این آخایش میکنم من تنها که به زندگی بهتری برسی بله رحم داشته باش تو منو از دست دادی؟ اون بجه چی به دست دادی؟ پروفوسور حالا به گوشه رنگ پارت میشه عزیزم نمیکنم مینا من نمیترسم اون ورزشی از دست جدا من براش خیلی زحمت کشیدم سابها سختی رو تمام تحمل کنی اما اگه هزار تا زعبن بکشی تو این رینگ به اندازه یه زبی نمیشه که تو زندگی به من ارزشش هیچ چی چی وای چه ولاسایی و نام که ارزش تو داشته باشه من اشتباه کردم آره هر چیز دارم هیچ نه زبی بعدی جهانو پارک میکنه رو دیواره نیروی او مینا بعدی سال فهمیدم هیچکی به اندازه تو منو دوست نداشته از جبران کنم می اگه فایده ای نداره ما میتونیم خوبی داشته باشیم اما تو میدون خالی کردی ر بعد تو بعد تو من باورمون بهش از دست دادم روزی هزار آرز رو مرگ کردم تو زندگی منو تباه کردی من تو مرز خودکوشی پیش رفتن تو باید شدی که من موتاد بشم جبران می کنم پر. بعدی پروفسور ناکوت میشه و پخش زمینه ده جام میاد بلندشه اما بیجونتر از اونیه که بخواد دوان بیاره رو باز با دستای باز رو زمین پشم جهان با, با یه سیبیل پتو پهن و تعریش گوم‌های جوگندومی و پریشون خوابیده رو کارتون چاو چاو چه اینجا دقیقه ای؟ انجام هست به صورت آمپرنش آزی. ممنون. ممنون. ممنون. ممنون. ممنون. ممنون. ممنون. چه همانجور پستان بس، که چندسه ایش خیلی خوب بوده نه وقتی اون بالامال ها چه ها امرو چنده مگه بری تو فرق یا میکنه دیگه امرو چنده ها یا کن شهری بر یادزه شهری بر برای آقا نسبت دوب روز به پایان رسیدن جنگ جهانی دوم در سال 1945 چه روز باشوگوی بود جهان از جنگ نکفت رقایی هست بشهر باید از این جنگ ها افراد تگیزه جهانجی ما باید جمعیت سل تشکیلیم هاشین اوکی نوریا، معلوم اداری واگاهی. جهان جان اسم جهان فامیل وی یادام شو شهرت من شهرتی ندارم اول اصلا بهت چی میگن میگن جهان جهانگیر او جهان جان جان عشق یعنی سان وقت میوتد یکی دو ساعت. یکی دو ساعت یعنی چی چند وقت شن وقت نموده دی. دایران نمی‌دونه این دقیقا دو ساعت. چرا پلا میگی؟ اگه بخواد جاو بالا کنه دیو. وقت من میدونم تو. جامعه سریشون برای نزدیکی ماموری پیگرد. جامعه سر. ما مشکلی دارم. به هر کی میگم باور نمی‌کنیم. چی ارث یا موتاد باور بیکنه؟ ما موتاد نیستیم. همه تون همینو میگی. نه الان گلی روی شما موتادم ولی در اصل ما موتاد نیست ببین مواد مقدر چی به سر دورده بب. ببین سر وزد تو خونوادت کجا هم من خونواده هم من ولی داشتم من اصلا نمیدام چون اینجا بیدار شما برو تو هنوز خواهی جمس دارم من خواهیشی تو بس ها تو پیدا قرش فیدا نمیشه به دیمان من جهان میره رو مینکت فلزی کنار یه مرد جوان با سیبیلای آویزون میشینه یکو زول میزنه به یه جایی مرد جوان نگاه های که دنبال میکنه میبینه اون داره به دختر کنار دستمون نگاه میکنه بازم این دختر شبیه میناسه مینا مینا تو اینجوری چیکار می‌کنی؟ چی, چی, چی می نام؟ بله، چی؟ اینا اسم زنن. دروغ میگه به خدا. راست به چیه؟ کاری میگه خودت چرت و میگی. این نام زن. ز شما بهش میگه جهانو میگیره. جوون مشت میزنه به سینه جهانو پرتش میکنه. جان هم میشینه رو زمین و تکی میده به دیوار. زن مبهوت به جهان خیره شده که گوشی تلفن در گوششه. صابوس، یخچال موبایل باشه. باز هم صدای زنگ. اما این بار توی اتاق مجلد جهان با صورت و شکم فربه با ریش پرپشت و جوگندمین که خط سیبیلاش تا زیر چونش سیاه با یه خالی هم گوشه بینیش داره به زحمت چشاش باز بازماره سلام عزیزم خوری دن برد تنی شده با از من از من میبینم ایدر شدین حاج همونه خوبه؟ بچه ها خوبه؟ تشهیف باشته باشیم من خدمت بیرسم و یه ست دیگه باشیم صبحه؟ ببین حاجه چه صبح قشنگی مره گفتم ما که شام با هم نمیخوریم نهار با هم نمیخوریم امروز صبحانه رو بردم اینجا با هم دیگه بخوریم راست دیگه من چه شده؟ چرا حالت بدلاجی؟ منم شام ورته خوردم همه چیزم تو من پیچیده. وای! <تصفح> الهی من بمیرم. از بس که شما از سبت تا شنبه قسط داری برای من بچه‌ها کاری کنم. خب کجا؟ چی میدونم پیمان که رفته به اصلش سر بزنه. پیمانم که یه هفته از خونه نیومده. پارسا هم دیشب گفت دارم میرم پیش مامانم. حالا دروغی راستش خودشه. بچه‌هاش وزنه میزنن جواب من نمیدن. من لقمه خروم که نخوردم اینجوری در اومدم. خب بیا. این چیزو بخورین. چی دنبال چی می‌گردی؟ من هنوز نشده بودم. بیا این بیا یه لغمه صبحانه بخور. حالت خوب نیست؟ خورم. من کار دارم باید برم. مینا براننده یه ساعت پایین دم در منتظره. باشه خواخواهش قا گوش بده ببین چی میگم. می‌خواستم امروز بیام بگم که بیام منو تو با هم دیگه این مدت بریم یه گوشه دنج. اخترینه رفتن مالزی گفت وای چه خبره چه خوش میگذاره با یکی درستت بار و من پرشو میدم من با دوستان می‌خوام برم با شما میخوام برم باشه بگم پرستت میکنم باید کم برم نیستا میخوایی ببرم به دکتر آج آقا نه نه نه کجا داری میری؟ این چیزی نمیدوم چی شده؟ زن یه لحظه حاجی رو تنها نمیذاره دنباله چی می‌گردی؟ کجا بودش داره من اینجا خسته مونده یه لحظه شما بگو دنبال چی میگردی شاید بتونم کمکت کنم نگه چیه ما دفتره اینجایی که نمیشی چشکلیه هیچی با هیچی من اصلا دیزشاق نوجه بریادم اونم نمیگی دنبال چی میگردی چیه دنباله اینجایی بیا دنباله اینجاست کجا بود؟ توشی بایم نه افتاده بود اون گوشه این مالی کیه؟ این مالی تویه برمان؟ واقع؟ سپریزه به چه ما نسو یه جعبه کوچی که توشی گردم برد هشنگه باشده یا؟ این چند وقته بسه من کاده نگرفتی؟ هواس هم بگه دیگه وقتی شده ها جاقا اوه؟ ها جاقا ببرای کشت باشه من بیود برم دیگه بادرخم زن با نگاه خسمانه ای ها ج حاج آقا با آشفته تو ماشین آخرین مدلش نشسته. می میپرسه دفتر دیگه قرار بود که... بود دیگه. حالا تو بوشیشون پیغامو میخونن که منزل دوم نوشته اگه نه سر قرار سر قرار چاش رانان به خیابون ماشین رو متوقف میکنه و پیاده میشه و در رو باز میکنه و همین نقطه زن جوونی میشینه کنار جاها در بدتنگ شده میشه چه سلامی؟ چه معلومه کجایی؟ اصخایی میکنم های تو به چه درد من میخوره هم؟ یه از نه یه سری میزنی؟ نه جواب تلفونام رو میگی؟ نه جواب اسمس رو میدی؟ حتی؟ می‌بیم در خونتون جل زن بچه با در و بچه‌ رو درو همسایه آبرو و حسیت تو ببرم ها دوست داری؟ نه خشم آوریدن بابا عادت خوبی ندارم. منو خונام. اِ چرا دیگه شده بود دران؟ خرمیدم مریض شدم. یک هفته سنم خوب نبود. خاک بر سر من جهان خاک بر سر من که اون همه خواستگارمو ول کردم به خاطر مال و ملل زن. دست میکنه جیبشو دستای ترابل چیکو درد نمی‌رن بدون شمارش می‌دوزن. همینی اخلاق خوبانlardı هم که دیگر. من می می‌دونستم تو خیر اصلا نه من برم ازت خوشحال می‌کنم چه نفس سفالامو مارش می‌زنی امروز هم می‌کنی سفره با هم من راست میگی جهان زانو بچتوش کار می‌کنین یکی تو ببین چقدر حساله این میگم برو برو دیر کار داشتی برو به کار بای بای ماسه پیاده شدن زن جهان به روند اشاره میکنه که زودتر بده. یس یس. چه دفتر با عظمتي. یس. دی شو ولیو اون No, no, no, no! Don't worry about it. I think I'll take care of everything. Say hi to Susan. See you soon. Goodbye. Assalam alaikum. Kafahalik. Asma ya azizi. Ashanat min fustul zafra. Bestait. نام انفه نام فی قدیسی فرش نام الله مسلم چطوره آقای اجناس رو دولار هفته پیش دادم. شو بودادم شما دو قلمش رو بفروشی به دکاری میدی هره عزیزم یه هفته دیگه دو هفته دیگه یک ماه دیگه خالا خرجان زیاد زایرانو نبیمه صد جواد پول بدم آجی بعد از نگاه به ساعت و دستی که به میکشی؟ میکشه ازنتو خورید بیا تو دختر جوانی که شکل میناس با یه سینی وارد میشه یه پرونده و یه لیوان آب پورتاقا تو سینی بفرد حاضر شور بریم کجا؟ اما اونجا دیگه آخه من یه عالمه کار دارم ایلان کار دیگه میخوای کارتا از دست میدی موقعی تو به این قوی رو دو کلمه میخوایم باید حرف رو دارم نمیتونم بیا برو برو برو برو وقت نداریم برو دختر که میره حاجی هم پرونده رو میبنده و دستی به میکشه و خودشو مرتب میکنه بجلوی آینه رو میپوشه و حواسش به در هست که کسی خوشحالیشو نبینه رستوران مجلد دختر با تردید قدم برمیداره خواهد حالا میان توقعی بالای رستوران. گارسون میاد بالا بخارم جایه میشه کسی روزایی نشه کارسان فورا رو رومیز میذاره و میره بگیم بگیم خوبی جایه خوبیه دختر چشاش مدام میچرخن و دلشوره گرفته دو <تصفح> میشه بگین چی کارم داشتین آخو من خیلی زود بد برم میگم از اون غذا بخوریم خودم میرسونست از دنگه کادو باز گرفته بودم هرچی گشتم پیداش نکردم از باز به تو فکر نکنم عوازفارتی گرفته دستتون رو هده کنم نیازی به کادو نبود بازا چی نکنی من مهل ندارم برخب نیچی دید باید مقایی نه من مهل ندارم ماهی دوست داری نه اهل احلاقا رفتن نیستم جوابو منو بده با من ازداراج من من من من نداریم ازنان فکر نداریم چی فکر میکنی در زندگی بخوایی که من نتونم من برات فراهم کنم آخه من شما آخه گوش کن تو زن من بشی یه شب چی میرسی خونه ماشین حساب بانکی سفر خارج جواهرات من خیلی تو دکتر آخه من به یکی دیگه خور دادم که من تظهرش میمونم یه آدم یه لقابا اون خونه داره ماشین داره فردا میتونه تو داره کنه بچه تو رو اداره داره کنه فکر کن بایدت فکر کن همه چی نیست آقای جوکش تو جوونی مینا الان خیلی متوجه نیستی من سن سال یادم گذاشتم باور کن احساس من به تو از روی حوث نیست این مدتی که برای من کار کردی یک الان احساس به تو خیده کرد تو همین یکی دو روزه من درست ازدواج کردم ولی همه اونا منو به صورت حساب بانکی متحرک میبینن هیچی منو به خاطر خودم نخواسته من احتیاج به یک هوای تازه و احساس و حواتف واقعی دارم من بهت قول میدم بچه تو وارسه همه سرغت من میشه اینو بهت قول میدم من تنها مینام اتیاج به کمکتون دارم اتیاج به یک نفر دارم که با من محبت واقعی داشته باشه با من رو را راست باشه اتیاج دارم به احساس تو اتیاج دارم هاشون قایه یک یک نقطه خیره میشه جوف منازل هاجاغار طبقه پایین رستوران براش دست کمیدن قضا من برم دستانو بشورم گرم سلام سلام اینجا چیکار کار تو اینجا چیکار میکنی؟ من منشی جدیده داشتم توجیحش میکردم خیلی هم خنگه اون موقع که میخواستی منو توجیح کنی اینجور جهان می آوردی منو میبردی جگرکی اون موقع وزم خراب بود چی اسماریش داری؟ خجالت بکش جهان ماسمالی نکن دیگه مگه نمیبینی کار از این حرفو گذشته؟ تکلیف من با این خانم روشنه من برام ببینم این دختره چی میگه شروعش نکنیده حاج راقا اینجا احترام داره. حاجی به محض اینکه جفت منازل میرن طبقه بالا پاورچین پاورچین از رستوران می‌ری بیرون بیتونه توجه به اطراف میره تو ماشینش پشت فرمان می‌شینه. روشن نکن او او او یه جهانو دیگه نم با اسلاحه سلط در بیاد که ما هم آدمه یه لقابایی بیکاره بیفولی بی آیندهی که نمیتونه تن بچه شوی کنه تو نمزه کجا تو که تو رسوران آویدی منش های دستانتو بسرمان یه ننگینی که همیارا تموم میشه اما هماشون من فردم هستم توجیهش کنم که تو کارش موفق بشه همه با آخر نمی کنی همیارا بود تو بسرم دو تحییرم پیششم بدشم برای خواهیت میدم اونگر میدم که کنی بدشم تا آخران تو رفاق بشه خوبه؟ دفعا پولتو نیده بسه بچه وید مفت خورد مجید به پول دوزی تو ندارم با این سینو ساله تارو چند نفر از راه بدر کردی نیک باید اون دختر بیچاره فقط برگی خونه آداشو اداره کنه مجبور شد بیا پیش داری نامرد کار کنه <تصفح> اراز خیلی خواهو جامعی بهت گفته باشم اونه جواتش خیلی ساب نکن جوات چو؟ یهو لاستیکش بزنی. اصا اون واقعا چه چوریه هست دستش میافته نمیدونه بچه چه کار کنه. آخورا. در حالی که حاجی داره جون میده، مرد به صورت از ماشین پیاده میشه. پیادهخالوته. مرد گردنش میکشه رو دهن و فقط میدونه نمیدونه چطور پله های پل آبه رو کنه جهان رو نمکت پارک خوابش میدونه جهانی جهان یا بسوانتان بردن بسوانی چیه بس خبنده خواح چم كن يا دي؟ شيغا ميخوري؟ بخور. چیکار كار تو؟ ي پاسوژات از زمین برداشت. تو خوشنيش؟ اي خوشناز. چي خوشنيش شدي؟ چي کردی؟ كردي؟ اعدامه. خوشم بوکشا بيچو. تو من چي كار كردي من من داشتم تو رو دست ميدادم اينو وقتي تو باشمند مي‌گم مردن من چي نداره. فکر میخوام داری خاله خچ هیچ هیچ بخوابم می خوام بخوابی یا خوابی برای فکر کردن برای دامو بکنی ما خوابلیم ما خوابیم چرا چرا کلام گوش داری بعدش می میرم زندان من میام زندان سال ها با تو زندان باشم تو فکر خودت باش برو من میخوام چون منم با تو فکر من میخوام وقتی بیدار اون وقت بهت میگم چیکار بکنی بیدار شو همش معلوم بشه بیدار بیدار شو شو نسخه اما پاتوروشه اینجا کجاست جای پری پاشو، پاشو جای پری، پاشوییه پاشو جای پری، پاشو جای پری. ادمی نه چرا به وقت پاشو. الان میام میاد الان تو. ادمی، من چرا نمیخوستم؟ در صفره هم بفرمون رجا یا الله سلامو ننه کن بفرمونه جباری بفرمین خواهش کنم بفرمین سلام آجام سلام آجام <تصفح> اگر مزاهمه من برم چند دقیقه بعد بیام نه نه خواهشون خواهشون آجام جباری این کاغذ خدمت شما باشه این قلم هم خدمت شما باشه اگر وسیعیتی دارید منقوم بفرموید که در خدمتون باشی آجام شما استخوانای بدن ما ماجرا البته این که موکی هستیم و از کجا اومدیم زیاد مهم نیست، سایه جباری. مهم اینه که ما این چند روزی داریم این هستیم و یه توشه ای برای آخرت خودمون باید تهیه کنیم. یعنی قص مطلب انسان ان جنگی جباری هستم که عمرت تو ماشین باشه همین مگنه‌کاریم. بعضی خطاهای کوچک، بعضی خطاهای بزرگ بعضی خطاها هم مثل خطای شما پرسر و صدا مثل قتلی که انجام دادیم بباشیم سرد شده و قدرون بیجه دارش اینجا من نمیخواستم بکشم منو تحقیه کرد خود به خودی شد من نمیخواستم بکشم جرم شما هم برای دادگاه محرزه انگیزه هشم که مشخصه دادگاه کنون دادگاه من دادگاه نرفتم اموت همه مدنیم سعی اونو میکنیم دوستانم در حیط سازش در تلاشن تا رضایت خانواده مکتوب رو به دست بیرن شما هم بعد یه تلاشی بکنین بلکه دلشون به رحم من چه تلاشی بکنم آجام شما کاری بکنین یعنی دادگاه بلگذار شد حکمو دادن تموم در توب باز خدامن من الهم و چه بسیار انسان هایی که در همین لحظات آخر رحمت خدا شمل حالشون شده و لطف خدا نصیبشون شده از رحمت خدا نامید نشید خدا من ما رو ببخشه انشاءالله آجا ببخشید بفرمید نمیشه چند قرص خواب بگیم برای من بیارن خواب ها خدا آخر آقاوه ما رو بخیر در حالی که به دستش دستبنده همراه همراهی یه معمور از راه راهی تنگ زندان میبذره و وارد حیات میشه تا <تصفيق> معمورا و آمبولانس و تناب دهارا میبینه پاهاش شور میشن و میاد بیافتی که سرباز نگهش میداره از روی شما شربانده هم نمیتونم چی بگم چرا کسی حرف اما باور نمی کن من نمیخواستم بکشم به خدا داری نشتی با بزنم. اگه تو جورچهشو نکشتی پس چرا داری قسم میخوری دیگه من عمدن نکشتم ایم. یه سال داری همینو میگی شوهرم از هم گرفتی میگی نمیخواستم بکشم نمیخواستم بکشم شد دلیل چون رو پیشا نمی کنی دارو دینه. ایس اچ داره میگه چند تا قرص خواب به من بدید. چی معلنی ده؟ دکتر، ساعت اول بعد به قرص نیست. حکمو بخونم. جهان رو چهار پای زیر تنب داروایی میسه. اسم الله الرحمن الرحیم. به موجب حکم دادگاه جنایی تهران، جناب آقای جهانگیر جباری فرزند اصغر به شماره شناسنامه 287 به دلیل ارتکاب قتل به ضرب گلوله مرحوم آقای جهانگیر جورکش مستوجب به حکم قصاص تشخیص داده شده و این حکم در سهرگاه مبرخی 25 دوازده 1390 به اجرا در می آید وست سلام علیه مردی تنها به دارو ایندازه کرده بش حرفی برای گفتن نداری؟ من بنده خدا. چرا از خانوادی مختول درخواست بخشش نمیکنی؟ کنید؟ خایده قرار بود ببخشن انگی حالا درخواست کن خانم من یک ی... یک چند کلمه حرف میخوام با شما بزنم من قبول دارم که شوهر شما کشتم ولی بابرکو من نمیخواستم این کار فقط میخواستم تهدیدش و کار میخواستم به برافتم تو ماشینش نشستم از دره دره ولی اون حرف هایی زد که خونه او به جوش آورد خونجانو چشانو گرفت دیگه نفهمدم چیکار کردم من دستم اون ماشه بود او به نوزادم تهمت زد من رو تحقیه کرد ولی کوچیک کرد من آدم دیگه نیگه یکی دیگه باشر فشارد و من ندادم الان که تقادر بخشش میکنم بخواد خودم نیست, نیست. خود اون دختره اون دختر منتظر دفرک با این کاتون دو نفر از میبرید وچه های شوهر من از خونه پدرشون نمیتو پس که بهم دیدین لاقل ن موقعین نه ببرقا جهان میگه و میگیره و میذاره دمه یعنی آخر قصه من اینجاست کی فکر زندگی من اینجوری تموم بشه کاشو دوتر تموم بشه خواهیش میکنم تمومش کنی من مال این زندگی نیستم مینا منو ببخش نتونستم ازت مراقبت کنم دستی من نبود منو ببخش مینا منو ببخش هین نواختنی نیم نگاهیم به زن حاجی میندزه. سب کنید کنی. منو این بچه ها از حق قصص میگذاریم همسر من مرد موجهی نبود بخشیدم بتا. جهان باورش نمیشه اگه قلبش وای خوبه خواهد پرستار که شبیه مینای رو به روبروی میز مرد مستانی نشسته مرد پوشه رو به دختر جوان میده جانگیر پرونده قطوری داره چون نزدیک 20 ساله که اینجاست قدیمیترین مریض ماست هرگز یادم نمیره اون شاید بارونی که اینجا و بردنش هیچ کس کاری نداره؟ نه تنهاست تنهاییم اونو به این روز انداخته تا حالا ملاقات کنندی نداشته اما باید بگم که بهترین مریض ماست که متاسفانه از فندروم دی, دی یا اختلال چنگانگی شخصیت رنج میداریم میشه بپرسن که بیماری چیه؟ دو دوچار این فندروم دو سه یا گای چندی شخصیت متوابی یا متضاد به دست میگیرن گایی شخصیت ها میتونن به صد مورد برسه جهانگی دقیقا به شما چی میگه؟ دایم میگه من شمار میشناسم البته من منو اس می دونم. اون همه کسایی که بهشون منده یا تعلق خاطر پیدا میکنه به اسم مینا صدا میزنه میتونم بپرسم که با این بیمار بچه برخوردی داشته باشم ببینید خانم فوتوی من روز اول با این که اشتیاق زیاد شما رو برای کار در اینجا دیدم بهتون مشتار دادم که بیمارای ما با مریضای بیمارستان عادی که قبلا شما در اونجا پرستار بودید فرق میکنه فقط ازتون کمک میخوام من اینو قبول کردم. خودم رو انتخاب خودم اومدم اینجا. این میزا بیشتر از هر چیزی نیاز به مدارا داره. شما باید اون چیزی رو ببینید که اونا می‌بینن. درد اینا از یه جنس ای. اینا انگار از یه کره دیگه اومدن. انگار قوانین زمینی خیلی برایشون کاربرد نداره. همهشون تیمارستان پر از جهانه. جهان متوا جهان وکیل، جهان. اینجا چیکار کردی با این قیافه تاپلو؟ برو تو اتاقت. آفرین. برو. شش و 6 خانم پرستار انتهای راه رو میرسه به چندین بیمار که کنار همو صندلی نشسته نگران نباشین مینا من حق میگیرم من نمیذارم حقت ضایع بشه مینا اونم هر تانکیت کنه باق تهاس بده من تو پرونده های سخته از از اینو دیدم چه مرسی به این من میکشم به دادگاه حتی اگه سرم بره بالا اینا تو جهانگیرو ندیدی جهانگیر منم دیگه پرس ها میخورم ولی حق تو میگیرم آبای حضور گفت ای عاشق من خوابت هم حالا پروفسور بغیر رو تشبوت میکفزدن میکنه جهانگیره نهیم جهانگیر خود بنده هستم مطمئن من الان اینجا نیستم برای ادامه تحصیل رفتم خارج شاید برگردم شایدن بر نگشتم اگر برگردم به خاطر پیدا کردن مینا پرخواستار من دنبال جهانگیرم شما رو پیدا نخواهید کردم شمایشون رو پیدا نخواهید کردم شدن که من مینا رو پیدا ده اگر قرار باشه مینا پیدا نشید بهتر جهان خراب بشه باد بیاد توفن بشه زرزره بیاد آب های زیر ستیر باعث چرخش خایلت بشی بشه جبباری وقت قرصه تازه خواهش میکنم میکوشمش ای این اماست جهنگیری جبباری آشغ هفتیر کش نمیخورم نمی قرصه میدار من کارم بکنم آقای جبباری چی شده؟ قرصه چرا قرصتو نمیخوری؟ بایی که سردنه اشکال نداره اما قرصتو بخور باز کن تو واسه نمیزه من کارم بکنم چرا قرصتو بخور ببینم؟ آ... آب بگیم بهش؟ ببینم بب... الان حالت خوب خوب میشه ببینه جهان رو جهان جهان جهان رو آب. <تصفيق> جهان کلاه بافتنی رو سرشه و بین دو تا مریض دیگه نشسته روی تخت و دارن با تمام قدرت پ جهانگی گرام شده میدونم خودم هم بیستانفیش دو دریا گرام شده هم هم هر چیز فاره میزنیم گیر میدیس میرسیم میرسیم میرسیم میگه میرسیم آره آنه با بر یک دو سه یک دو سه میگه میرسیم گیر دو دو دو پرستار میره کنار پنجره تو نگاهی به حیات مندازه دو یه جهانگیر دیگران میبینه با موهای سفید که رو دو ششه و تو پیاده روی نزدیک پارک نشسته پرستار به آرومی به جهان سفید مو نزدیک میشه سلام جهان تو اینجا نشستی من یک ساعته دارم دنبالت می‌گردم هستی؟ من می نام دیگه تو مینای نیستی مینای نیستی نه تو مینای نیستی این تنها باریه که جهانگیر اشتباه نمیگونه مینای نیستی نه تو مینای من نیستی نگاهاتو نمیشناسم. باید برگرده اون روزا شاید برگرده احساسام میونه خواب و بیداری میونه یه های سین چقدر اسمم کمش کردم که قلم حتی یادم یه روز اسمم تو فالو ولی حالا توفالت نیست بیندی بونگی همون چرا عین خیالت نیست یه روز اسمم تو بود ولی حالا توفالت نیست بیندی بونگی همون چرا عین خیالت نیست عزیزان شنونده امیدوارم از شنیدن این فیلم لذت برده باشید تا هکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل بدرود به داباما عوض کردم که دستم سهم دستت شد ولی قسمت نبود انگاه که عشقم با تو محکم شد ولی عشقم راسمونی بود یه تو من تو فالو ولی حالو تو فال سنیس به دیوونه گی ها چرا عین خیالت نیست چه رود اسمم تو فالو ولی حالو تو فال نیست. به دیوونه گی ها چرا عین خیالت نیست نا تو می من نیستی نگاه تو نمیشناسم نمیشناسم نه. تو می من نیستی نگاه تو نمیشناسم نمیشناسم